بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين السلام و السلام سيدنا و نبینا محمد و على آله عليه تاهرین الطاهرين لا سيما بقيه الله في الارزي.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 السلام علی علي بن الحسین زین العابدین السلام علی محمد بن علی باغر علم النبيين السلام علی جعفر ابن محمد الصادق السلام علی موسی بن جعفر کازم السلام علی علي بن موسی الرزا السلام علی محمد بن علی الجواد السلام على علی بن محمد الحادی السلام على الحسن بن علی الزکی الاسکری السلام على الحجت بن الحسن القائم المن. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الارواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بغیت و الليل اللیل و النهار ولا لا الله حلا آخر العهد منیل زیارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين قال الحسين عليه السلام انا ادیوكم إلى كتاب الله و نبيه فإن السنة بد أمیتات والبد اعتقد اهیت تسمعوا قولي وتطيعوا امري عهدكم الى سبيل الرشاد عرض رسوندم عبدالله الحسین علیه و عرض رساندم تبيين ابي عبد الله الحسين عليه السلام قولا و فعلا در رابطه با آشورای حسینی چه فرمایشاتی که از مدینه تا مکه از مکه تا کربلا داشتند و چه عملی که عملا به ما نشون دادن برای روشنگری این مطلب که موانع تحقق هدف انبیا چه بوده است چه شد که هدف انبیا که در رأسشون برای ما مسلمین هدف بعست مقام ختمی مرتبت است که بنا بود طبق قول قرآن کریم و آنچه که پیامبر اسلام معمور بودند و بیان نمودن ما افرادی کامل و لایق خانوادههایی پاک ارزنده جامعهای سالم و ایدئال داشته باشیم چرا آن که بنابود بود تحقق بیابد نیافت کسانی که وحی را قبول ندارند نبوت را نمیپذیرند مسائل ماوراء ماده و سیطره ملکوت بر عالم ملک را منکران میتوانند سریح بگویند این حرفاب وعده پوشالی است به دین دل خوش نکنید به وحی ایمان نیاورید و لذا مسائل دینی را اساتیری پیش نشناسند و اون تعبیر معروف مارکسیستی که دین افیون ملت هاست و اگر بخواهید اقوام و ملل رستگار شوند باید دین را از جامعه بشری بزدایید خب این مطلب رو ما وارد بحثش نشدیم به این جهت گفتیم پس از اون که با ادله متقن و با دلائل قانع کننده دروندینی و بروندینی و با دلائل کلامی و فلسفی و عرفانی پذیرفتیم بشر نیازمند به وحی است انسان در هر شعنی از شؤون در هر ای از مراتب کمال فردی و اجتماعی قرار بگیرد بی نیاز از وحی نمیتواند باشد تاکید میکنم جوانان عزیزی که نسبت به این بحث شبهه دارند ایراد میگیرند می هیچ نترسند با اهل فن مطرح کنند انقدر بحث شده انقدر دلائل قوی ارائه شده برای کسانی که بیغرض باشند با چند جلسه بحث کردن و دلائل منطقی را شنیدن این قسمت اول حل میشود ولی جزء بحث امسال ما در این مکان نبود ما از اینجا به بعدش رو بحث میکنیم اینجا به بعد چه بود؟ کسانی که قائل شدند، ما به وحی نیازمندیم قرار از مکتب انبیا درس بگیریم لقد کانه لکم فی رسول الله عصوتن حسنه را پذیرفته ایم رسول الله را عصوه حسنه میشناسیم قرار پیرو از پیغمبر بکنیم و قرآن کریم تاکید می‌فرماید ان هاذ القران یهدی للتی هی اعظم شما عالیترین و بهترین راهی را که قرار است در اون مسیر قرار بگیرید تا به درجات عالیات نائل شوید راه خدایی است که قران با عنوان آخرینش معرفی کرده از اینجا به بعد عرض کردم موانع تحقق هدف انبیا در سه دسته معروف متدینین و نحوه دینداریشون در طول تاریخ و به ویژه در زمان ما و دنیای امروز است سه دسته‌ای که یک هم در صدر اسلام بوده ان شاهد ارائه میکنم هم امروز هستن منابعی رو ذکر خواهم کرد که میگویند وحی قبول ما برای ماده رو پذیرفتیم ما جهان هستی و حقایق را فقط طبیعی و فیزیک نمیشناسیم ما متافیزیک رو هم قبول کردیم ولی خارایی وحی توان وحی به تعبیر دیگر رسالت وحی و انبیا جز در رابطه با مسائل فردی و شخصی و اخلاقی چیز دیگری نیست شما اگر می‌خواهید در مسائل مهم اجتماعی و تعالی و تکامل اقتصادی و نظامی و سیاسی پیشروید، کاری به وحی نداشته بوشیم ما در تاریخ وقتی مراجعه میکنیم یک نمونه فعلا از باب اشاره تنها فقط کفایت کند وگرنه زمان بسیاری رو میطلبه اشاره کنم در کتاب سنن ابن ماجه جلد دوم صفحه 852 صحیح مسلم کتاب الفضائل جلد چهار صفحه 1836 مسند احمد هنبل جلد یک صفحه 162 انایت دارید منابع حدیثی مشهور و معروفی که از سحاه ستش و مرده می شود نقل میکند سالی که پیغمبر خدا از مکه وارد مدینه شدند چون در مدینه نخلستونهای فرابانی بود و اینها در فصل گرد افشانی به جهتی اینکه این درختان دو به زحمتی از درختهای نر بالا می‌رفتند. این خوشه ها رو می کندن بعد می اومدن تو نخلستون هاشون از این درختای دیگه بالا برن بتکانن گرد افشانی کنن تا خرما داشته باشن پیامبر سال اولی که از مکه وارد مدینه شدن فرمودن چرا خودتون طبق این بیان چرا خودتون رو به زحمت میندازید؟ کارها دست خداست خدا اگر بخواهد محصول بدهد دهد و اگر نخواهد بدهد نمیدهد اونا گفتن یعنی یا رسول الله ما این کار رو انجام ندیم پیغمبر فرمود نه لازم نیست اونا این کار رو انجام ندادن موقع برداشت محصول خورما خرما دیدن حاصلی ندارن زرر کردند. اومدن پیش پیغمبر یا رسول الله بیچاره شدیم پیغمبر فرمود حق با شماست من در مسائل دنیایی چیزی بلد نیستم شما فقط مسائل اخلاقی و معنوی رو از من پیروی کنید اینا رو هر جوری که خودتون بلدید عمل کنید آیا می شود این رو پذیرفت؟ فقط با یک اشاره من فعلا ارز کنم این جریان فکری که وحی را تضعیف کنن کارایی وحی رو توی محدود خاصی بیارن و انتظار انسان را از انبیا یک انتظار حد اقلی بشمرند سابقه از صدر اسلام داره من فرصت ندارم تحلیل کنم که چرا در صدر اسلام این گونه افکار را رواج دادند و اینکه امامت شیعه بعد از پیامبر قرار بود رأس کار قرار بگیرن تا اون مدینه فاضله ای که قرآن و همه انبیا وعده کرده بودند تحقق بیابه اما خانه نشین شدن بر مبنای این جریان فکری بوده است و از کجا آب خورده این خودش یک بحث مفصلی است که باید جداگانه با مستندات قابل پذیرشش بهش پرداخته شود اما فقط یه اشاره میکنم در ذهن بعضی ها الغای شبه نشود یک آقا پیامبر خودش بچه عربه مگه پیغمبر تو مکم ها رو ندیده بود پیغمبر نمیدونست که درخت خرما اگر این عمل و انجام ندیم خرما نداره این مقدارم راجب به دنیا بلد نبودن دو پیغمبری که قرآن آورده و در قرآن کریم تصویه کرده سنت الله ولن تجدل سنتهی تبدیلا ولن تجدل سنت الله تحویلا سنت خدا رو مگه میشه عوض کرد ای سنت خداست قانون حاکمه بر عالم، چند شب قبلم از آیات قرآن براتون گفتم یعنی پیغمبر خلاف آیاتی که بر او نازل شده و در قرآن به من و شما بیان کرده خلاف اون عمل میکند، پس برای چی متاعه مطلق است؟ این بری تضعیف مقام نبوت که زمین سازی شود تا بعد از پیامبر جان پیغمبر را هم بتوانند تضعیف کنند الان در زمان پیغمبر قدرت ندارند جایگزین قرار بدن ولی بعد از پیغمبر توانند اولیای الهی رو کنار بزنن اونهایی که خودشون صلاح میدونن جایگزین کنن که این خودش یکی از موانع امده تحقق هدف هم چرا؟ چون وقتی من در مقام معرفت حد و کارائی وحی را بیش از یک دایره زیقی نمیدانم. دیگه زمینه تأثیر بیرون از این دایره برای من معنا پیدا نمی کند در دورانهای بعدی هم از صدر اسلام این جریان فکری شروع شد به صورت های مختلف من اجازه بدید اسم نبرم ولی یه منابعی رو حتی در روزنامه ها و مجلات و هفته نامه ها و ماهنامه ها که این جریان فکر را تلاش داشتند در جامعه ما هم القا کنند من نمونه رو مطلب رو میخونم اسم نویسنده و گوینده رو کاری ندارم هفته نامه آبان مهر هفتاد اسلام 1400 سال پیش در مورد مفاهیم اجتماعی امروز نظر ندارد خب الان اینجا نگفته نمیتواند داشته باشد نرم نرم نظر ندارد دو ماهنامه کیان فروردین هفتاد و هفت دین در تمام زمینهای اقتصاد حکومت تجارت قانون اخلاق ارزشها اعتقادات و دیره احکامی حد اقل دارد و اکثر را به عقل بشری واگذار نموده است یعنی وحی کافی نبود دیگه ما خودمون بیایم ببینیم بر مبنای تشخیص خودمون اون جاهایی که وحی پیش بینی نکرده ما چکارش بکنیم همون ماهنامه کیان مرداد 78 اكمال دین که در قرآن آمده به این معناست که دین به وظیفه خود که بیان حد عقل است کاملا عمل کرده است نه اینکه که در زمینهای فقهی، سیاسی، اجتماعی و غیره انسان محتاج به آن است بیان کرده باشد جهان اسلام مهر هفتاد و هفت دین برای ساختن آخرت است دنیا کاری ندارد روزنامه ایران دی هفتاد و هفت برای عناوین جدید بشری همچون تحذب و غیره نمیتوان مبانی فقهی و یا کلامی درست کرد ماهنامه کیان بهمن هفتاد و هفت مفاهیم جدید سیاسی و اجتماعی و حکومتی اصلا در فقه ما سابقه ندارد تا ما بخواهیم از آنها مجوز بگیریم حکومت عدالت و آزادی زمان پیامبر با زمان ما متفاوت است بنابراین نمیتوان، نمی‌توان الگویی از آن برای امروز یافت روزنامه صبح امروز اردیبهشت 78 دین امری فردی و در رابطه فرد با خداست هفتنامه توانا شهری بر هفتاد هفت. حقیقت ثابت نداریم حتی در دست انبیا و معصومین هم حقیقت ثابتی نبوده که بتوان آن را برای همه ازمنه و امکنه دیکته کند هفتنامه آبان ده هفتاد وحی برای نسلهای های بعد از زمان خود قابل فهم نیست اینا نمونه‌ای بود حالا کتاب مفصلی که در این رابطه نوشته شده شاید برخیش و اشاراتی بکنم من سال 93 من پرواز داشتم برای امریکا رفتم کالیفرنیا. از تگزاس با من تماس گرفتن برخی دوستان آقا حتماً یه چند جلسه برای ما بگذارید. بنده رفتم تگزاس. یکی از افراد قبل از من در اونجا چند جلسه سخنرانی کرده بود که قرآن خیالاتی، خوابی، رؤیایی برای پیغمبر بیشتر نبوده. حالا شاید من شب‌های دیگه نمونه‌هایی رو بخونم. یعنی وحی خواب پیغمبره معجزه الهی نیست. یه مطلب صد درصد یقینی درستی که قرار شما ازو استفاده کنی نیست. شخص دیگری که بنا ندارم اسم ببرم در همون مکان سخنرانی کرده بودند. امامان شیعه شماها گندش کردید. اونم یه آدمای معمولی بودند. در زمان بعد از پیغمبر یه بدی نبودن. خب حالا یک کارایی هم کردن. امروز دیگه دنیا دنیای دیگری است. بنده قرار شد برم اونجا جمعم جمع دانشجو دانشگاهی افراد خیلی هاشونم بیغرز بودن آی چیه قضیه برای ما صحبت کن من پنج شب بیشتر وقت نداشتم تو تگزاس بمونم گفتم والا این حدیث متواتر قطعیه که همشیه نقل کرده هم سنی که پیغمبر چرارن فرمود اینی تاره کن فیکم و سقلین او سقلین کتاب الله و اطرتی ما انتمسکتم بهما لن تزلو بعدی ابدا ولن یفترقا حتی یردا علیال حوز من میرم دو چیز در میانتون میگذارم یکی قرآن یکی اترت اگر قرار بعد از من به زلالت نیافتید اگر قرار اونی که من به عنوان پیغمبر از طرف خدا آوردم و شما به اون نتیجه برسید تمسو که به این دوتا داشته باشید یکیشو ایشون رد کرد یکیشو ایشون پس چی از اسلام باقی باقیمون که شما توقع دارید اسلام قراره تو جامعه تحقق و چی رو تحقق و وای وی که نه اطرتم که نه اگه عربستان با اون همه حالت ضد دینی آبروی اسلام و قرآن و مسلمین رو برده اقل ادعا می کند قرآن رو قبول دارم ولی به شکل غلط شما که میگی هم قرآن نه هم اطرت نه خب پس چی؟ بنده اگر بخوام یه دانش ای دایر کنم و ادعا نمایم 50 تا دانشجو رو به من بدید من در این دانشکده بعد از پنج سال با این طرحی که دارم 50 تا مهندس لایق به شما تحویل میدم ولی نظام آموزشی منو نمیپذیرید کتابها و جزوات درسی من رو کنار میذارید اساتید ما این شده من رو از کلاس بیرون میکنید با یک سیستم دیگری که دلتون میخواد این کلاس رو بالا پایین میکنید بعد میگید به من انتقاد میکنید میگید چرا فارغ و تحصیل اون ادعایی که شما کردی نشد بله پیغمبر قرآن آورد قرآن فرمود انتم اعلان ولی چی؟ انکنتم مؤمنین؟ لازمه ای ایمان چیه؟ آن نه، اثرات نه. پس چی؟ با سلیقه شخصی من، با شخصی من یه مقدار این شوا بحث کردم تو کجا میتونه پیش بره. اون حرفی که دیشب از رسو زدم نیمه کارمون، اینجا جاش الان تکمیل کنم. رسو در کتاب قراردادهای اجتماعی ترجمه فارسی صفحه چهار میگه که برای تدوین قوانینی که به درد ملل بخورد یک عقل کل لازم است یک عقل کل یه حقوقدان است که تو دنیا مطرحه و رو حرفاش به عنوان یک صاحب نظر مثلا مسائل حقوقی و اجتماعی و قراردادهای اجتماعی اینا میتونه اظهار نظر بکنه چی میگه یک عقل کل لازم است اولا چرا عقل کل میگه برای اینکه کسی میخواد قوانین وضع کنه باید همه شؤون بشری را در تمام جهات شناخت پیدا کنه و اگر عقل کل نباشد ما یه تعبیری در عرفان داریم بعضی از عرفات و اشعارشون عقل را کوبیدن کسانی که آشنایی دقیق با این مطالب ندارن تصور میکنند در عرفان عقل ستیزی و عقل گریزی باید باشد قطعا این نیست چون اگر بشه عرفانی، شهودی با عقل سازگار نباشه معیار صحت و اثباتش چه میشه و اگر مولوی گفته پای استدلالیان چوبین بود پای چوبین سخت بی تمکین میخواد بگه عقلو بذار کنار پس چرا همین مولوی تو مسنوی گفته گفت من عقلم رسول جلال حجت الله هم امان از هر زلال اشاره به حدیث امام کازم علیه السلام این لله على الناس حجتین حجتن باطنه و حجتن ظاهره اما ظاهر الانبیاء و الرسول و الا و اما الباطنه گفت من عقلم رسول زلجلال حجت الله هم امان از هر زلال اونا عقل جزئی را میکوبند که این مقدار رسو هم فهمیده میگه عقل کل لازم است یعنی اگر بنده الان مثلا در بنای ساختمان حسینیه ارشاد از من مشورت کنن فرض کنید این میخواد ساخته بشه نه ساختن. ما این بنا رو چجوری بسازیم؟ من عقلم نسبت به شعون مختلف ساختمانی یه عقل جزئیه ممکنه یه گوشش رو بفهمم من همه جهات این بناری که آهاته ندارم تاسیسات چجوری باشه بهتره محاسبات چگونه باید صورت بگیره و و و لذا میگن در اینجا باید عقل جمعی باشد حتی اگر تو یک شعون تخصص برداره مثل مثلا مداوای یک بیمار اگه چشمزش نظر داد جهاز حازمم نظر بده راجب قلبشم نظر بده کسی که بر کل احاته داشته باشه کدون بشر میتونه بگه من بر کل احاطه دارم کدون بشر تونستم چه دایی بکنه و ادامه شو ببینید مهمتر از این برای وضع قوانینی که به درد ملل بخورد یک عقل کل لازم است که همه نیازمندی های ما ها را بشناسد خود در اون نیازمندی با ما شریک نباشد خیلی قشنگرف زده انصافه همه نیازمندی های ما را بشناسد گاهی نیاز قریزی رو میبینن نیاز عاطفی رو نمیبینن نیاز عاطفی رو میبینن نیاز معنوی رو نمیبینن نیاز معنوی رو میبینن مثل همین جزنگری هایی که انبه های دل و میبین فراموش میکنن عقلو و دلو دل و فراموش میکن عقل و دلو و حس و فراموش میکنن. امپریش میشن حس و میبین و دل فراموش میکنن. این جزئی نگری در عالم بیچاره کننده است یک اقل کل لازم است که همه نیازمندی های ما را بشناسد و در نیازمنی های ما،, ما ما شریک نباشد. چرا ادامش یه توزییح میده استدلالی قشنگی کرده ادامهش چیه میگه حاضر شود به منافع ما کمک کند ولی منفعت او ربطی به منافع ما نداشته باشد عجیب نکته قشنگی فهمیده و این غیر از خدا و اولیای الهی هیچ که نیست لذا سیتره وحی بر عالم وجود رو داره میگه دقت کنید چطور؟ منافع ما رو بشناسه یعنی بدونه چی به نفع منه مثلا الان فرض کنید بنده میخوام یک حکم باید نباید برای های کلاسم تنظیم کنم یک باید دقیق بشناسم شاگردام کیان توانشون چقادره علالقادیه دانشجو در این مقطع چقدر میتونه نسبت به این رشته کار بکنه نحوه ارتب... مثلا تدریس با این دانشجو جگونه باشه همین رو در نظر بگیرم اما منافع اونها رو کاملا بشناسم ولی منفعت من ربطی به منفعت اونها نداشته باشه چرا چون ممکنه من اونی که الان قرار به نفع اونها و برای منفعت اونها مفید به اونها بگم این به ضرر من تموم بشه به خاطر اینکه من زرر نکنم یه جوری دیگه قانون بسکنم میشه یا نمیشه در طول تاریخ بوده یا نه آقا قانون کردن تو امریکا عذر میخوام ببخشید هم جنس بازی بعدی جمعش کنید، اقلا، حکما، اندیشمندان، جامعه شناسان سر و کردند. بعد یه عده مجلس تصویب کرد، عده ای راه پیمایی کردند. آقا این با دموکراسی و آزادی و حقوق بشر و از این بازی که در آوردن، آقا با اینها ناسازگاره، شما باید آزادی ما رو مخترم بشمرید. یه عده از همون نمایندگان مجلسی که اینو تصدیق کرده بودن گفتن آقا دوره بعد به ما رأی نمیدن بریم بگیم اب نداره اینا رو بر خودمون نگاه داریم یعنی چی یعنی منفعت من وابسته به منفعت شماست من قانون قانون‌وضع کنم خیر شما رو در نظر نمیگیرم منفعت خودمو در نظر گیرم. روسو چی میگه برای وضع قوانینی که به درد ملل بخورد یک عقل کل لازم است این اول همه نیازمندی های ما رو بشناسه این دو منافع ما را آگاه باشه این سه منفعت او وابسته به منفعت ما نباشه چهار این دو است که شیعه معتقده در کره زمین غیر از شیعه این اعتقاد نداره چیه؟ یک حاکم که حکم میکند به ذات حضرت حق است و بعد از حضرت حق معصومین علیهم السلام و اگر فقها استنباط فقهی میکنند که بحث فردا شبه منه ان الله نه اجتهاد در مقابل نص نه اجتهاد در مقابل نص توضیح میدم یعنی چی بعد این رو فقط شیعه داره به این معنی میگه یک باید عالم جمیع شؤون باشد یا وابسته به عالم جعیبی که علمش لدونی باشد علم لدونی مالی که مال محصول لذا اشاره کردم امیرال می‌فرماد: سلونی سلونی قبل انتب بپرسید و همین اومدن چجوری معنی کردن من جوابشم نوشتم چاپم شده اومدن گفتن آقا این که هم همین نظریات که اینجا عرض کردم ما دردمون اینه که آقا من حالا انشاءالله دشمن نیستن نمیخوام بگم دشمن میگم الله جاهلان متوجه مطلب نشدن ولی درد ما اینه که اکثریت مردم ما تحقیقات دقیق دینی ندارن وقت نمیذارن بحث های عمقی نمی کنن. من آشقم برای تو جلسه امام حسین روزه بخانم عشق بریزم سینه بزنم قبول دارم ولی تو این دهه بگه کدوم جلسه مداش قشنگتر میخونه بریم اونجا کدوم جلسه غذاهاشون چربتره بجیم اونجا کدوم جلسه ریتم سینه زدنشون زیباتره بریم اونجا پس چی یاد بگیریم از امام حسین و این همه دارن بمباران شبهات و اشکال میکنن خیلی کجا باید جواب داده بشه و معلوم بشه آقا دقت کنید رو این زمینه میگه یک باید علم لدونی باشد اون وقت طرف چی میگه میگه آقا علی ابن عبی طالب سلونی قبل تفقدونی انا به طرق سما اعرف من طرق العرض یعنی من حرفایی که از بالا اومده راجب مسائل شخصیتونه اونا رو بلدم دیگه مسائلی که مربوط به این عالمه که من بلد نیستم پس این خطوه 147 ای که دیشب خوندم چی میگید؟ پس اینل حکم الا لله که این چند شب بحث کردم چی میگید؟ پس چرا رابطه یه تکفین و تشریح با هم دیگه به صورت حکم کلی بیان شده و اطلاق قید نداره چی میگید؟ که چون بحث کردم تکرار نمیکنم. ببینید ما هنوز درگیر گیر مشکل معرفتی در مورد کارایی وحیم خب اینا معلوم مانی تحقق هدف انبیا میشه خب اجازه بدید من اول از امیر علیه السلام بازی مطلب دیگه خدمتتون بگم یه تحلیل عقلی بکنم بیام دسته دومم یه اشاره بکنم خوب انایت بکنید امیر المؤمنین علیه السلام در حکمت نهد البلاغه ارتباط این معرفت این شناخت با عمل که بعد از نظر بحث های حکمی که حکمات چجوری این رو مطرح کردن عرض می کنم ولی اول سخن مولا رو بگم مولا می فرماید الا بیدار باشید توجه کنید الا یه تنبه یه تذکر افراد رو به به کارگیری قدرت تعقلشون برای توجه به این مطلبه لذا این الا در ابتدای جمله داری این نفتر رو میرسونه. رسونه الا این اولیاء الله اونایی که با مقامات رسیدن اونایی که به اون ارزش‌های والا نائل شدند تو درجات اولیای الهی قرار گرفتن الا ان اولیا الله هم اللذین اونا کسانی هستند نماز خیلی میخوان باید نماز کن باید روزه گرفت باید عبد بود باید مطیع شد من این شبا اشاره کردم اگر قرآن میگه قد افلح المؤمنون مؤمنو از قرآن براتون چقدر آیه به اندازه وقتمون آوردم هنوزم باز کار دارم انشالله میارم بحث میکنم میگه لازمه مؤمن بودن اینه که متی باشید تسلیم باشید در مقابل پروردگار پس من نمیخوام نعوذ بالله رد کنم نماز باید خون، روزه باید گرفت، وظائف دینی رو باید انجام داد. اما اینجا من یک سوال زیر بنایی در رابطه با این فرمایش امیرالمؤمنین به ذهنم میرسه مطرح میکنم. الا ان اولیا الله هم اللذین اونا کسانی هستند که چگونه از دید امیرالمؤمنین السلام هم اللذین نظروا الى باطن دنیا اذا نظر ناس الا ظاهرها اول نظر معرفت و شناخت اونها کسانی هن که نظرشون افق دیدشون معرفت و شناساییشون به باطن دنیا عمق دنیا حقایق ماورا این عالم ماده است اذا وقتی که نظر ناس اکثریت مردم ان به ظاهرها همین مسائل ظاهری دنیوی رو میبینن پس یک ولی خدا اولیای الهی از نظر امیرالمؤمنین تو نهج البلاغه با علای تنبؤ و انی تاکید در اولش الا ان اولیا الله هم الذین نظروا ال باطن دنیا اذن نظر الناس ال ظاهرها خب این مرحله نظره نتیجه این نظر و معرفت چه میشه؟ عمل عمل بعدیشیه وشتغلو وشتغلو مشغله عمل نهوه حرکت و تلاش وشتغلو به آجله ها با علف وشتغلو به آجله ها ازا اشتغلن ناس به ها با عین آجل با عین همین دمه دستی یا عجله با عجله موقتی مقطعی عاجله با علف آینده دور و اشتغلوا به عاجله ها مشغله شون سرگرمی شون برای اون آینده دور سره اذا ناس به عاجله ها وقتی اکثریت مردم با همین امور دم دستی فعلا دل میکنن اجازه بدید با مثال عرض کنم شما آقازادیتونو تو کلاس اول ابتدایی ثبت نام کردید آقازاده شما به جهت سنش الان تو کلاس اول ابتدایی قرار گرفته نظرش قرار تا با کجا برم اینا نمیتونه تحلیل کنه لذا دمی را خوش باش و حالا چرخ فلک خوبه حالا سرسور بازی خوبه حالا این کارتون رو ببینیم خوبه ولی شما چون عاجل آینده دور رو میبینید میگید باید مشغول یک اموری بشید که به نفع اونجا باشه حق نداری اینقدر پای کارتونا بشینی حق نداری اینقدر سرسر بازی کنی چرا؟ چون من آینده رو میبینم نظر چگونه است عمل گونه. اینو حکما در بحث تقسیم حکمت حکمت نظری حکمت عملی میگن حکمت نظری کارایی عقل در شناخت هست و نیست است حکمت عملی کارائی عقل برای نحوه عمل به اختزای اون معرفت هست و نیست و سخن به جایی لذا دست کردن بحث های مفصلی روش انجام دادند او کتابه نوشته شده با یه اشاره اجمالی مثالی ارز کنم بنده فرض کنید الان میگم آقا من بعد از حسینیه ارشاد مثال میزنم آقا پرواز دارم میخوام برم اهواز میفرمایید هواش خیلی گرم هست این میشه عقل نظری راجب هستونیس داره نظر میده شناختی پیدا کرده که آقا اهواز هوایش خیلی گرم هست بعد عقل عملی اینجا وارد میدان میشه چی میگه؟ میگه پس نباید پالتو برداشت پس نباید پلیور پشمی با خودم بردارم، پس باید لباس مناسب گرما بردارم، حالا اگر بگم من از اینجا پرواز دارم به فلان منطقه، میگن هوایش خیلی سرده است، یخبندان هم هست، این نظر راجب هست، و وقت عقل عملی میاد چی میگه؟ میگه پس باید لباس گرم هم برداشت، امیر امیرالمؤمنین علیه السلام میفرماید شناخت اولیای الهی به حقایق ماورا مشغله برای اون حقایق ماورا. من از این فرمایش امیرالمؤمنین و این حرف تقسیم حکمت نظری و عملی حکما میام سراغ این مشکل دسته اول نظر راجب وحی این است که در محدوده ما فوق مسائل شخصی حق دخالت ندارد پس عقل عملی باید بگه بذار کنار خب بذار کنار خب پس دیگه چه توقعی از وحیه پس اینجا ما باید بحث کنیم اول لذا یک بحث دروندینی داریم یه بحث بروندینی ببینید عزیز ما ما وقتی میخوایم یه مطلبی رو اثبات کنیم گاهی بعد از قبول دین از دین میپذیریم به عنوان اونی که دین نقل کرده مثلا الان بنده با شما به عنوان مسلمان میگیم آقا، نماز صبح درکت است و واجبه. میگه به چه دلیل؟ میگم یک، قرآن فرموده اقم السلات. دو، پیغمبر فرمودن سلو کما رأیتومونی و سلی. نماز بخونید ببین من چجوری میخونم؟ پیغمبر صبح درکت اینجوری خوندن، پس نماز ما صبح درکت اینجوریه. این, این میشه بحث دروندینی، یعنی از خود دین میگیریم. حالا اگر به شما بگن آقا میتونید با عقل اثبات کنید چرا صبح باید نماز دمازخون؟ نه این بحث عقلی نیست در حد توان عقل نیست عقل نمیتونه اثبات کنه اما اگر مسائلی رو که عقل حق اظهار نظر داره و میتونه بحث بکنه مثل چی؟ آقا در مسائل اعتقادی مسائل عقلیه مسائل تحقیقیه به این معنی مثلا میان به شما میگن آقا شما مسلمونید بله شما قبول دارید خدا هست خدا یکیه بله دلیلتون چیه عقل به این دلیل عقلی به این دلیل عقلی، به این دلیل عقلی خدا هست به این دلیل عقلی خدا یکیه آقا شما دلیل دارید که قرآن حقه بله با این دلایلی که الان برای شما ارائه میکنم این دلایل اثبات میکنه که قرآن حقه و قرآن معجزه است اینجا چون حقیقت دین را از یک امری که خود دین به صورت دور برای خودش بگه نیست اینه میگن بروندینی لذا ما وقتی که میایم کارایی وحی رو بحث میکنیم اگر منصف باشیم وحی رو قبول کرده باشیم اولین مطلبی که کارایی وحی رو قرار بیان کنه درون دینی هست یا نیست؟ با باید دینی باشه شما میگیم من وحی رو قبول کردم بله مگر اینکه که یواش یواش بیایم به اونجا برسیم بگیم که وحیم خیلی همچین دیالا مثلا بله این وقت باید با بحث بروندینی بکنیم به همین جهت ما داریم دوتا رو با هم بحث میکنیم حالا وقتی دروندینی بحث میکنیم یه آیه دیگر هم من تیامنن و تبرکن امشب اضافه بکنم آیه مبارکه شست و پنج از سوره مبارکه نسا فلا و رب یؤمنون چند شب هی ای این بحثو داشتیم رستگاری مال مؤمنینه شما اگه قرار با اون نتیجه ای که انبیا میخوان برسید باید ایمان بیارید حالا تو سوره مبارکه نسا آیه شماره پنج فلا و ربک رب یؤمنون نه نه نه به رب تو قسم ای پیغمبر لا یؤمنون مؤمن نیستن ها مؤمن نیستن طبق این بحثی که این شبو داشتیم یعنی رستگار نیست یعنی به اون نتیجه ای که دین میخواد نمیرسن معلومه که نمیرسن پس باید مؤمن بشن حالا کی مؤمنن فلا و لا یؤمنون حتی مگر اینکه، تا اینکه، تا اینکه تا اینکه چی یو حکمون که فیما شجر بینه تو در مورد اختلاف نظرهاشون حکم برانی حکم اون هست که تو فرمانی تو چه حکم میکنید حکم را غذا را شب قبل با هم بحث کردیم ما و ما کان للمؤمنن ولا مؤمنه اذا غزا الله ورسوله اي يكون لهم الخير بحث کردیم حالا اینجا چی میگی اینجا از اون کمی شدیدتره میگه مؤمن نیستن به خدای تو سوگند ای پیغمبر مؤمن نیستن حتی مگر این که یو حکمو که فی ما شجر بینهم هم مشاجره هایی که بینشون در میگیره اختلاف نظرهایی که با هم دیگه دارن قرار یه حکمی بدن این وسط حکم حکم تو باشه اما به چه صورت ثم، لا یجدو فی انفسهم حرجا مما غزیت و یسلمو تسلیم ها خدایش بیامر زد مرحوم علامه تبا تبایی رزوان الله تعالی علی در تفسیر گرون سنگ المیزان دو سه نکتر این ارز میکنم فرمایش ایشونه دو سه نکتر رو ایشون در زید این آیه شریفه در رابطه با این بحثی کلام بنده با شما دارم مطرح کردن خیلی عجیبه میفرمایند حتی شما در مقام عمل حکم پیغمبر را قبول بکنید ولی در دل ناراضی باشید اون مؤمنی که قراره به اون نتیجه برسه نیستید طبق این آیه این نکته کجای آیه گفته ثم لا یجدو فی انفسهم حرجا مما غزوت یعنی چی یعنی چنان معرفت نسبت به وحی قوی باشه حرف خداست سخن الهیه پیانبر از طرف خدا اومده من در مقابل عظمت خدا و پیغمبر چه بخوام از خودم اظهار وجودی بکنم همینجا بد نیست من این روایت امام باغر علیه السلام رو از بهار جل 71 صفحه 153 شاهد بیارم بعد برگردم نکته های بعدی مرحوم علامه رو براتون بگم حق من خلق الله به تسلیم لما الله آقا هیچی رو برای ما فروگذار نکردند نکردن همه رو توزی دادند راه رو هموار کردن ولی چه بکنیم که وقتی علی در زمان خودش سر در دل چاه میکند ای خدا مرا از این مردم بگیر به من مردمی بهتر از این مردم بده اسر من داننده اسرار نیست یوسف من بهر این بازار نیست اون وقت توماسکارلایل مستشرق انگلیسی بیاد بگه افسوس زمانی که علی ابن ابی طالب فرمود سلونی سلونی قبل انتفقدونی به جای اون که قلم به دست علی بدن بیل به دست علی دادن او فهمیده به جای که قلم به دست علی بدن بیل به دست علی دادن ببینید امام باغر چه سلام الله علیه چه نکته زریفی رو دارن تذکر میدن احق او من خلق الله به تسلیم لما غزا الله وقتی خدا غزا الله حکم کرد نظری داد یه چیزی رو برای ما معین کرد آیه‌ای که قبلا خوندم یادتون باشه چندین آیه راجبه غذای الهی خوندیم که یکیش کاملا روشن ما کان للمؤمنن ولا مؤمنه اذا غزا الله ورسوله ان يكون لهم الخيره وقتی خدا قضا حکم کرد که قضا رو توزی دادیم احق من خلق الله به تسلیم سزاوارترین ما خلق الله یعنی اون خدا در این عالم آفریده اونی که از همه سزاوارتره به تسلیم بگه چارش خدایی حکم کردی اون چیه؟ ببینی چی داره میگه؟ عمدن هی تکرار میکنم احق من خلق الله. به تسلیم لما قز الله لما قز الله رو ترجمه جلو میندازم وقتی خدا حکمی کرد نظری داد فرمانی صادر فربود احق من خلق الله سزاوارترین در میان مخلوقات خدا که تسلیم باشه بگه چشم من اون است که عرف الله خدا رو شناخته یعنی چی؟ چقدر این زیبا و منطقیه این درست فرمایش امامه ولی اینن بروندینی میتونه استدلال عقلی مستقل بروندینی باشه یعنی چی؟ من عرف الله کسی که خدا رو شناخت یعنی چی شناخته؟ میگه اگر علم است هیچ که به پایه نیست اگر قدرت از هیچ که به پایه نیست اگر عدالت از هیچ که به پایه نیست اگر رحمت هست هیچ که به پایه او نیست چی بگم؟ بگم هرچه میگی الله اکبرو ان یوسف از او بالاتر او حکم کند است یا منو شما حکم کنیم آقا رسو هم میگه عقل کل لازمه منفعتش تو و منفعت من تصادم پیدا نکنه خب غیر از خدا کیو داری؟ پس باید عالیترین تسلیم تسلیم خدا باشه لذا آیه چی میگه؟ فلا و رب بکه. لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بینهم ثم لا يجدوا فی انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسلیما مرحوم علامه چی میفرمان یک انقدر معرفت بالا بره شناخت عالی بشه الان عرض کنید بنده و یه ایکس دو تایی مهندس ساختمان مراجعه میکنیم آقا من مخواه یه ساختمان دانشکدهی رو تأسیس کنم مهندس ساختمون برای من میگه این زمینی که شما انتخاب کردید مناسب نیست اینجا نسازید مثلا این زمین فرض کنید رانش داره شما اونقدر به علم این مهندس ایمان دارید انقدر به صداقت این مهندس ایمان دارید انقدر به تشخیص این مهندس ایمان دارید میگید اصلا هیچ مهندس دیگری در این رشته با این آقا قابل مقایسه نیست خب باشه من همه زحمتیم هم که کشیدم جابجا میکنم دنبال تهیه زمین در یه جای دیگه میگردم اما بنده این معرفت و نسبت به این مهندس ندارم میگم حالا بذار با یکی دیگه هم مطرح کنم بذار یه مقداری بررسی بکنیم ببینیم میشه کاری کرد یا نه اینجا نشون میده معرفت من نسبت به او معرفتی است که تردید برداره. امام باغیر در این فرمایش خدا در اون آیه میگه مؤمن کیه؟ آن چنان خدا را شناخته؟ میگه کی میتونه بهتر از تو حکم بده؟ توام که در قرآن گفتی حکم من مطلق پس من اگر حکم میخوام با سراغ حکم تو بیام فلا و رب کل لا یؤمنون حتى يحكموا کفی ما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضی تو دلشم خلجانی ایجاد نشه معرفت انقد قوی باشه اما دنبالش مرحوم علامه فرمان این تأکید بیشتر یو تسلیما تسلیما مفعول مطلقه مفعول مطلق بعد از فعل تأکید شدید رو می رسونه. یعنی اون شنان تسلیم در مقابل امر خدا بگه من کسی رو با تو نمیتونم برابر بدونم و چون خدا همه این اختیارات رو به رسولش داده پس این تسلیم باید در مقابل تسلیم رسول خدا باشه مشکل اول چیه؟ مشکل اول اینه که ما اینجا رو هنوز دعوا داریم. اینجا را هنوز با اون شناختی که قرار بررسیم نرسیدیم خب من دسته دومو میذارم فردا ولی اینجا حالا نتیجه بگیرم عنایت بکنید چی باعث شد هدف انبیا تحقق نیابد از صدر اسلام به جای اینکه بیان بگن یا رسول الله تسلیمی بفرمایید چیکار کنیم ما تابع شما باشیم وقتی که فرمان جنگ احد صادر شد پیغمبر فرمودند قرار به جنگیم حالا داخل مدینه یا بیرون مدینه با بحثایی که بود اما یاسر اومد خدمت پیغمبر ار کرد یا رسول الله ما مثل بنی اسرائیل نیستیم که وقتی حضرت موسی فرمود قرار با فرعون بجنگیم گفتن تو با خدای خودت برو با فرعون بجنگ پیروز شدی پیغام بده ما بیاییم خیلی مؤمنین راستین پرتلاش و پرزحمتی بودند سر سفره آماده دعوت ما بیایم بشینیم اما رشی گفت یا رسول الله ما مثل بنی اسرائیل نیستیم ما میگیم هرچی شما بگید میگیم چشم اینا مومنن تو پیغمبر خدایی هر چی از طرف خدا گفتی ما قراره تابه بشیم و تسلیم بشیم ولی وقتی ما از اون اول شروع کردیم در مقابل حرف پیغمبر حرف خودمون دخالت بدیم پس توقع اونی که خدا قرار از طریق پیغمبر و اولیای اون تو جامعه ما ایجاد کنه توقعش هم نداشته باشیم مشکل از اینجاست چون نظام الهی اینه انایت بفرمایید چون نظام الهی اینه راه را نشنده هد. تقاضا دارم دقت کنید چه ارز میکنم نظام الهی اینه سنت پروردگار که در قرآن تأکید میکند لا تبدیل خلق الله این عوض شدنی نیست چیه؟ اونی که مربوط به خدا و اولیای اوس اتمام حجت و است تحقق منوط به خاست مردمه همت مردمه تلاش مردمه همکاری کردن مردمه لذا بعد از پیغمبر اسلام اولین مرحله ای که قرار اولیای الهی بیان برای تحقق بجای جای این که بیان در مقابل ولی خدا بگن یا ولی الله یا حجت الله یا خلیفت الله یا وارث انبیا چشم ما در خدمت بر مبنای منافع چند روزه دنیا خون به دل ولی خدا می و آشورا را می ولی خدا را به عنوان خارج از دین میکشن اما وقت امام حسین چی میگه الله اکبر روز آشوراس. یه تیکش رو پیروز خوندم این یه تیکش هم دقت کنید با کدوم مردم انایت بکنید تحقق بیابه. خب نظام الهینه انا هد اینا سبیل اما شاکرن و اما کفورا. من راه رو نشون میدم شما میتونی شاکر باشی میتونی نباشی شاکر شدی لا این شکرتوم لا اما شاکر نشدی لا این کفرتوم ان عذابی شدید که خب معلومه حالا ان هدیناه سبیل الان تحقق هدایت الهی امام حسین علیه السلام شد حالا ما تعمیر سری اومدند شاد برگردم الان امام حسین شده امام حسین اومده میگه که انا ادعو کم کتاب الله و سنت نبیه که داریم هر شب میخونیم بابا من دارم میگم اینو کتاب چی گفته؟ به این سنت پیغمبر چی گفته؟ آقا اگه قراره الان ترونه انال الحق لا یعمل به؟ و ان لا يتناهى ليرغب المؤمن فی لقاء ربه محقا اني لا ارى الموت الا سعاده ولا الحياه مع الظالمين الا برما نمیبینید به حق عمل نمیشه نمیبینید از باطل نهی نمیشه آخه این چه حق باصلی من حسین دارم فریاد میزنم روزا آقا گوش کنید با شما سخن بگم همهمه کردن مقتل خارزمی نقل میکنه تاریخ دمشق هم این بیسه طبری هم نقل کرده میگه که قال لهم امام حسین روز عاشورا خطاب بی مردم وای لکم وای بر شما ما علیکم انتون ستو الیه و تسمع و قولی چی شده که کمی سکوتی نمیکنید گوش بدید ببینید من چی میکن؟ شما سلمونید شما دم از دین میزنید حالا من حسین پسر پیغمبر نه من خلیفه به حق نه من جز خمسه طیبه نه من یه مسلمون هم دارم با شما نه اصلا مسلمون هم نیستم من دارم با شما حرف میزنم مگه قرآن شما نگفته که فبشر عبادل لزینه یستمعون القول خب یه حالی تباون گوش کنید ببین من چی میگم ولی خود حضرت فرمودن چرا گوش نمی گوش نکردن یه وقت اونجوریه یه وقتم گوش کردن عدم معرفت صحیه که حالا عرض می کنم قال لهم بينكم ما من ان تنسوا الي و قولی قولي وانما ادعوكم الى سبيل الرشاد من دارم شما رو تو راه رشد میارم من دارم شما رو تو مسیر حق میارم فمن عطاعنی كان من المرشدين اونایی که از من بشنون و اطاعت کنن رشد یافتن و من اساني كان من المهلكين اونایی که حرف منو گوش ندن هلاك شدن و کلوکم اسن لأمری همه چون دارید نسبت به امر من اسیان میورزید غیر و مستمعن لقولی شما گوش کننده ی حرف من نیستید چرا اینجا به بعد دقت کنید قد ان خزلات اتیاتکم من الحرام و ملعت بطونکم منال حرام فتبه الله علی قلوب کم لا ستون انقدر بهتون رشوه باطل دادن عطایای دربار یزید و ابن زیاد حرام شکماتون رو پر کرده دیگه عقلتون کار نمیکنه. دیگه دلتون شیفته زرق و برق چند روزه دنیوی شدید دیگه توجه به خدا و اولیای الهی و وحی و اینها نمیتونه برای شما مطرح باشه الات تسمعونا چرا گوش نمیکنید خب برای اینه لذا اینجا میخواد این نکته رو ابی عبدالله به من توجه بده خدا تو آیه 65 سوره نسا میگه میخواید رستگار باشید مؤمن وید یسلم تسلیما یسلم تسلیما چجوری؟ وقتی که پیغمبر قضابت کرد تو دلتونم حرج ایجاد نشه اما شما زرگ و برق دنیا چنان شما رو به خودتون مشغول کرده اگرم بدانید حق با من است به خاطر منفعت گذرای مقطعی چند روزه دنیا حاضر نیستید با ما همکاری کنید خب بعد معلومه که دین نمیتونه تحقق بیابه حالا این از تاریخ طبری جلد 5 صفحه 392 خیلی عجیبه خدا قسم من گاهی وقتا اینا رو چند بار هی میخونم هی بر میگردم یعنی تو این حد آخه بشر به کجا میتونه برسه دقت کنید ان سعد ابن عبیده ان اشیاخنا من اهل الکوفه پیر مردا غیش های ما تو کوفه علی رو دیده بودن بعضی هم جزء سحابه پیغمبر بودن پیغمبر هم دیده بودن اون همه عظمت ها رو دیده بودن الا تل یبکون و یقولون رفته بودن روی بلندی تپه ایستاده بودن گریه میکردن و یقولون و میگفتن اللهم انزل نسرک خدا یا نصرت تو نازل کن نزار حسین شکست بخوره قال قل تو این تو تاریخش نعقل میکنه میگه گفتم به اون سعید ابن عبیده میگه به اونایی که اینجوری میکردن گفتم یا اعداء الله الا تنزلون و او. خب چرا خودتون پایین نمید کمکش کنید؟ اینا همون امت بنی اسرائیل میشن که چی؟ شما برید اگه پیروز شدید ما بیاییم اگه حسین پیروز شد ما میگیم جلو نشد بعد میریم تو کاخ ابن زیاد پیروزیش هم بهش تبریک میگیم آیا تا زمانی که امت اسلامی نسبت به وحی اینگونه گونه برخورد کند آرزوی تحقق هدف انبیا بعید هست یا نه؟ یه دلیل غیبت امام زمان همینه یه دلیل غیبت زمان. نشون بدیم در دوران غیبت ما وحیو قبول داریم ما خدا رو قبول داریم ما دین دینو قبول داریم ما پذیرفتیم که باید به وسیله دین الهی بشر به سرمنزل مقصود برسه ولی خب حالا امام حسین علیه السلام فرمود آقا من اومدم شما رو ادعوکم کم کتاب الله و سنت نبیه چجوری عمل کردن روز آشورا داره اینجوری سخن میگه مرسد رو کرد به جمعیت جواب حسین رو بدید سنگ شروع شد یک اهل دلی تعبیر قشنگی داره میگه آشورا با یه سنگ شروع شد با یه سنگ تمام شد با سنگی که شروع شد اینجا بود امام حسین وقتی این حرفا رو میزدن سنگ ها آمد حضرت فرمود اتمام حجت شد دیگه شروع کنید کی تمام شد؟ اصرا آشورا که دیگه همه رفته بودن امام حسین علیه السلام تنها روی اسب نشسته و بازم داره اتمام حجت میکنه بازم داره به اینها تذکر میده اینجا یه سنگ آمد محکم به پیشانی ابی عبدالله خورد انقدر این سنگ و زربش محکم بود که پیشانی مبارک حضرت شکست خون جاری شد حضرت پیراهن عربیشو بلند کرد که این خون پیشانی رو پاک کنه سینه مبارک نمایان شد حرمله نگاه می کرد تیری از کمان درآورد چنان به قلب عبی عبدالله زد که اینجا امام حسین از به زمین افتاد وقتی از به زمین افتاد در مقاتل داره حالت حضرت حالت سجده بود سر به زمین الهی رزن به رزائک تسلیما لغزائک لا معبود سباک یه ای برم برگردم میگن بعد از این که مختار قیام کرد و قتله کربلا را به جزای اعمال ظاهریشون میرسون شخصی از مدینه آمد کوفه مختار گفت کجا بودی؟ گفت مدینه بودم خدمت آقا امام سجاد رسیدی بله گفتی من دارم در کوفه چه می کنم بله ولی تا گفتم امام سجاد فرمودن هرمله را هم گرفتن یا نه مختار گفت نمیدونم هرمله چه کرده که امام سجاد دلش انقدر به درد آمده فرمود به هر قیمتی شد هرمله رو پیدا کنید هرمله رو پیدا کردن دستگیرش کردن مختار گفت هرمله بگی تو رو میکشم نگیم میکشم بگو چه کردی و من تیرانداز ماهری بودم در روز آشورا سه تا تیر زدم تیر اول را به چشمان ابلفض زدم اونگاهی که مرشک سوراخ شد آب به زمین میریخت ابلفض با حسرت نگاه میکرد تیر به چشمان ابلفض زدم تیر دوم وقتی علی اسخر رو دست عبی عبدالله بود، در اثر تشنگی این گردن تحمل سر کودک رو نداشت سر خم شده بود رو شانه پدر من تیر به سفیدی گلوی اسخر زدم تیر سوم وقتی حسین با دامن عربیشو بالا زد خونه پیشانیشو پاک کنه تیر به قلب ابی عبدالله زدم اینجا بود که حسین از اسب زمین افتاد وارد گودال قتلگاه شد پسر یازده ساله امام مجتبا عبدالله حسن در خیمه ایستاده بود نگاه می کرد یه وقتی تو گودال قتلگاه هم همست از زیر دست و بال زینب رها کرد خود رو دوان دوان خودشو به گودال قتلگاه رسوند خودشو انداخ رو بدن امو یه ظالمی شمشیر بالا کشید این کودک یازده سال دستشو بالا آورد میخوای امو جان مرا بزنی دست از بدن جدا شد یه فریادی کشید خودش رو سینه امو انداخ جان به جان آفرین تسلیم کرد صلی الله علیک یا مولای یا ابا عبدالله